قسطه های هزار یک شب شبه چهل یک خلیفه تا یک ماه در کنار گور همی است، پس از آن در دیوان بنشست امرا و وزرا حاضر آمدند پس از ساعتی بازیافتگان را مرخص فرموده خود به هرمسرا بازگشت کنیزکی در بالین و کنیزکی در زیر پای خیشتن بنشاند و به پس از زمانی بیدار شد و شنید که کنیزکی که در بالین خلیفه نشسته به آن یکی میگوید ای خیزران وای بر تو خیزران جواب داد ای قذیب این سخن چرا گفتی؟ خیزران گفت سید ما از چگونگی خبردار نیست وگرنه چرا در سر گوری همینه و همی گرید که به دانگورندر جز چوب خشکی که درودگرش تراشیده چیزی نیست قذیب گفت ای خیزران راست راستکو که قوت القلوب کجا شد و برو چه گذشت؟ خیزران گفت به فرمان سید زبیده کنیزکی بنگ بر وی خورانید چون بیهوش شد به صندوق اندرش نهاده به ثواب و کافور گفت که به مقبرش برده در خاکش کنند کنیزک از آن یکی پرسید اکنون قوت القلوب مرده است یا نه؟ خیزران گفت خدا نکنات من از سید شنیدم که قوت القلوب در نزد بازرگان دمشقی قانم بن ایوب است کنیزکان به گفتگو اندر بودند و خلیفه گوش همیداد. چون کنیزکان حدیث به انجام رسانیدند و خلیفه از چگونگی آگاه شد دانست که گور را به تصویر ساختند بسی خشمگین شد در حال برخاسته به ایوان نشست و امراء دولت حاضر کرد و رو به جعفر برمکی کرده با او گفت جمعی با خیشتن بردار و به خانه قانم بازرگان رو و کنیز من قوت القلوب را بیاور جعفر برمکی خادمان برداشت و شهنه و تابعان او را نیز خبر کرد و همین رفتند تا به خانه قانم بازرگان رسیدند قانم در آن ساعت از بازار بر بریان آورده با قوت القلوب همی خوردند و قوت القلوب لقمه گرفته به دهان قانم می برد که وزیر و شهنه و خادمان چهار سوی خانه قانم را گرفتند از قضا قوت القلوب از پنجره بیرون نگریست و سربازان خلیفه را شناخت قفت القلوب دانست که خلیفه از قضیه او آگاه گشته گونهش زرد شد و دلش تپیدن گرفت و مرگ را ایان بدید و با قانم گفت تو خیشتن برهان قانم گفت بدینسان اینسان که به خانه گرد آمدهاند چگونه توانم گریخت؟ و کجا توانم رفت که مال من در این خانه است قوت القلوب گفت اگر نروی مال و جان هر دو تلف خواهد شد اکنون تو برخیز و جامعه در دربر کن و دیگ گوشت بر سر بنه و نانهای ته سفره بر دامن بریز و بدین هیله بیرون شو و با من کار مدار پس قانم به اشارت قوت القلوب دیگ بر سر نهاده بیرون رفت و خدا نیز پرده بر روی کار او کشیده نجات یافت. خادمان چون به خانه گرد آمدند جعفر از اسب به زیر آمد و به خانه اندر شد و قوت القلوب ذر نقد و عقدهای مرسع و ذرینه و گوهرهای قیمتی به صندوق اندر محکم کرده بود. چون جعفر را بدید بر پای خواست و زمین ببوسید و گفت ای وزیر بی بر بران چه خدا خواسته بود قلم برفت جعفر با او گفت یا سیدتی خلیفه مرا به گرفتن قانم فرمان داد قوت القلوب گفت او بار بسته به دمشق روان شد و تو این صندوق از برای من نگاه دار و به قصر خلیفش برسان جعفر برمکی صندوق به خادمان بداد و اموال قانم را به قارت بردند و قوت القلوب را برداشته به قصر خلیفه آوردند جعفر ماجرا به خلیفه باز گفت خلیفه فرمان داد که قوت القلوب را به خانه تاریکی بنشانند و پیرزنی را به خدمت گزاری او بگماشت، و گمان خلیفه این بود که قانم از او تمتع گرفته پس کتابی به سلطان محمد بن سلیمان زینی که نایب دمشق بود بنوشت و مضمون این بود که آن ساعت که نوشته مرا بخانی قانم بن ایوب را گرفته بدین جا بفرست چون منشور خلیفه به سلطان محمد برسید آن را ببوسید و در اسواق ندا دادند که هر کس قارت همیخواهد به خانه قانم بن ایوب رود مردمان گروه گروه روی به خانه قانم گذاشتند و مادر و خواهر قانم را دیدند که صورت قبری ساخته بر سر آن نشستند و گریانند ایشان را بگرفتند و خانه به یقما بردند و کسی نمیدانست که سبب چیست چون مادر و خواهر قانم را پیش سلطان حاضر کردند احوال قانم را از ایشان باز پرسید گفتند یک سال است که از او باخبر نیستیم پس ایشان را به خانه بازگرداندند کار مادر و خواهر قانم بدین گونه گذشت و اما قانم چون مال او به قارت بردند حیران و گریان از شهر بدر شد و تا هنگام شام برفت. مانده و گرسنه به شهری رسید. در مسجدی بر روی بوریان نشست و پشت بر دیوار مسجد رنجور و گرسنه بود. تا بامداد در همانجا بنشست و از گرسنگی به هلاکت نزدیک بود. علا سباخ، مردم شهر از بهر نماز صبح به مسجد آمده قانم را دیدند که افتاده و زعف بر او قالب آمده ولی آثار بزرگی و سعادتمندی از جبین وی پدیدار است پیش رفته گفتند ای جوان از کجای و چنین رنجور چرایی؟ قانم چشم به گشود و بر ایشان نظاره کرده بگریست و جواب باز نگفت یکی از مردم شهر دانست که او از گرسنگی رنجور است بیرون رفته دو قرصه نان با اصل باز آورد قانم نان و اصل بخورد و مردم به پیش او نشسته بودند تا آفتاب برامد هر یک به کار خیش رفتند و قانم تا یک ماه به دانسان در آن شهر به مسجد اندر بماند هر روز رنجورتر و نظارتر میشد مردمان شهر او را مهربانی میکردند تا اینکه چنان مسلحت دیدند که او را به بیمارستان بقداد برند مردم در نزد قانم به مشاوره گرد آمده بودند دیدند که دو زن به دریوزگی نزد ایشان آمدند همانا اندوزن مادر و خواهر قانم بودند چون قانم ایشان را دید قرصه نانی که در زیر بالین داشت به ایشان بداد و ایشان نیز آن شب در نزد او به سر بردند ولی هیچ یک دیگری را نشناخت چون بامداد با شد مردم شتربانی بیاوردند و قانم را بر شطر بسته شتربان را گفتند که این را به بیمارستان بغداد برسان شاید بهبودی یابد و مادر و خواهر قانم نیز در میان مردم ایستاده بودند و با هم همی گفتند که این جوان به قانم بسیار شبیه است و قانم به فراز اشتر گریان بود و مادر و خواهرش بر احوال او و به جدایی قانم هم میگریستند پس شتربان اشتر براند و مادر و خواهر قانم نیز به بقداد سفر کردند شتربان قانم را به در بیمارستان رسانیده در همانجا بگذاشت و خود بازگشت قانم آن شب را به در بیمارستان افتاده بود چون روز برامد مردمان به نظاره قانم گرد آمدند و به و نظاری او دلسوزی می کردند آن حال شیخ سوق بیامد و مردم را از او به یک سو کرد و گفت باید من به سبب این مسکین بهشت را بخرم اگر او را به بیمارستان برند در یک روز خواهند کشت پس خادمان را گفت که قانم را دوش گرفته به خانه بردند شیخ منزل جداگانه از بهر او ترتیب داد و فرش فاخر بگسترد و خوابگاه بگشود و با زن خود گفت که او را پرستاری کند زن شیخ برخاسته آب گرم کرد و دست و پا و تن او را بشست و جامعه نو بر او پوشانید و قدهی شرابش بنوشانید و با گلابش معتر ساخت قانم اندکی به هوش آمد و از قوتال القلوب یاد کرده بگریست و اما قوتال القلوب چون خلیفه بر او خشم آورد قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.